سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید. سلام و درود امیدوارم که تا اینجا اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. همونطوری که هفته گذشته اشاره کردم این هفته یک مصاحبه داریم من این هفته با یه ورزشکار مصاحبه کردم یک ورزشکار بهایی معمولا وقتی اسم بهایی میاد و اسم بهایی به گوشمون میخوره اون چیزی که بیشتر توی اخبار ما شنیدیم محرومین از تحصیل بهایی هستن و مسئله این که بهایی ها رو به دانشگاه راه نمیدن محروم از تحصیل میشن و نقص پرونده میخورن اما تا حالا محرومین از ورزش رو شنیدید یعنی کسی به خاطر بهایی بودن از ورزش محروم بشه خب تا چند لحظه دیگه که چه اتفاقاتی برای این ورزشکار خوب کشورمون افتاده یک جودوکار خیلی خوب از استان فارس شهر شیراز آقای خشایار زاری آقای خشایار زاری یکی از جدوکاران خوب کشورمون هستن که بارها در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کردند. به تیم ملی دعوت شدن ولی هر بار به علت بودند و نه ضعف تکنیک یا مسائل فنی از تیم ملی حذف شدند کافی اسم ایشون رو در گوگل جستجو بکنید تا اخبار مربوط به موفقیت‌های ایشون مسابقاتی که داشتن اردوهای تیم ملی که دعوت شدن رو بتونید بشناسید برای مثلا خبرگزاری جمهوری اسلامی در سال 91 خبری رو منتشر کرده بوده با عنوان نفرات برتر مسابقات انتخابیه تیم بزرگسالان جودو فاس شناخته شدند در متن خبر هم اومده که در وزن 6 گلوگم خشایار زاره از شیراز عنوان نفر اول رو کسب کرده خب بریم سراغ مصاحبه و گفتگوی من رو با آقای خشایار زاره ای در رابطه با اتفاقاتی که برایشون افتاده و جریان دعوت نشدن به تیم ملی رو از زبون خودشون بشنریم حاضر جان از بفهم که اول خودتو رو معرفی کنی، اینکه کجا هستی و در چه رشته فعالیت میکنی. من حاضر هستم. رشته ورزشی من جدایی که امروزان از بچه که از حدود 5-6 سالگی شروع کردم به انجام این ورزش توی مدتی که جده رو انجام میدی آیا در مسابقه هم شرکت کردی مقامی و عنوانی هم آوردی ولی بله من تا به حدود 7-8 مدال کشوری دارم توی رشته جده رده سنی نوجوانان جوانان بزرگسالان سالان همونجور رو دیگه پنجاتایی هم مدالای را دیگه خب این موفقیتایی که کسب کردی آیا تعهد تونستی برای انتخابی تیم ملی یا المپیک هم بری به اون رد هم برسی یا نه منم بعد از دوره نوجوانان که به اصطلاح سال حدود 85 یکی سری دعوت شدم بورد تیم ملی برای انجام انتخابی تیم ملی که به صلاح فراست تربیت اعلام کلام ما که راست تربیت دادن شما را, را رد صلاحیت کرد و شما صلاحیت حضور داخل, داخل انتخابی تیم ملی رو ولی خب سال بعدش من تونستم دو بار کویستران و ارمان کشور باشم تومسا به کشوری به خاطر همین دعوت شدم ملی که تو دو, دو مرحله انتخابی تیم ملی هم اول شدم تو مسابقات انتخابی تیم ملی ولی بعد از اون به اسطلاح منو دعوت نکردم اردون تیم رفت مسابقه، مسابقه آسیایی هند ولی نامی دعوت من بعد از که تیم رفت مسابقه بری من فرست دادم تیم نتونستم مسابقه بدم منظور آن... حراسط از این که شما صلاحیت ندارین چی بود؟ مگه مشکل شما چی بوده؟ مشکل که به مربی تیم میلی عنوان کردن به من این بود که شما به کارتر که به هستید حد بود داخل تیم ملی نداریم، اینجور به ما شد این فقط اعلام شفاهی بود یعنی به شما برگه کتبی یعنی اون اعلام شفاهی هم فقط از طریق مربی تیم ملی که آشنای مود به ما آشنای مود نابود به اون اعلام شد. وگرنه یعنی کل حراست هم دقیقاً موضوع رو اینجور عنوان نکرد و پی سر کردن مورد پیچونن و این اونور بفرسن و اینا در فقط مربی تیم ملی اینو به من اونوار کرد. گفت که این قضیه پیش اومده و به خاطر این هست که شما دارن محرومتون کنن از به اصطلاح چند بار برادران من رفتن تهران به اصطلاح پداسیون جدو و جاهای تلفس دیگه وزارت خارجه اینها اعلام کردن اونا هم گفتن ما نامه رو فرستادیم و این اشتباه تربیت شدن شما بوده و نمیدونم این رون تقصیر ما نبوده و یه پی چیز دیگه داخل روند پیش اومده و ما تقصیر کار نبودیم و نامه رو فرستادیم و اونا اینجوری قضیه رو پیچوندن تا شد سال بعد سال بعد دوباره انتخابیه تیم ملی بود که من رفتم اونجا که شرکت بکنم ولی قبل از اون کسی من اعلام نکرد انتخابیه که همون مربی تیم ملی که اصطلاح شیرازی بود و با من کار کرد و قبل انداخل شیراز هم من اعلام کرد انتخاب تیم ملی خودتو برسود که بعد برادرهای من به رئیس فدراسیون و اون موقع آقای امینی بود آقای از آقای امینی پرسن آیا کسی به خاطر صرف داشتن بیانت باهایی محروم از این داخل انتخابی تیم ملی شرکت کنه که شما نمیداریم ها؟ آقای امینی که به اصلاح گفت که من داخل کتاب قانونه همون نگاه میکنم کنم اگر مشکلی توی این موضوع نبود ما شما رو دعوت می که اوشون هم بعد برادرانی من بهشون تماس گرفتم گفتم مشکل نداره بیا من هم رفتم اون موقع برای پنجاه کیلو بود انتخابی تیم میلی سال هشتاده که من رفتم اونجا شرکت کردم و حریفام شکستم و به اصلاح رفتم فینال فینال رو هم برده بودم مسابقه رو ولی در پاین مسابقه یه نفر از فراست اومد داخل سالن به داور مسابقه اعلام کرد که نتیجه رو اعلام نکن یعنی منو برنده اعلام نکنه در نتیجه داورم به ما گفت فقط بریم بیرون ما هم رفتیم بیرون که مربی سرمربی تیم ملی آقای که الان فوت کردن الان آقای بهرامی من اعلام کردن که فراست تربیت بدنی اومدن و گفتن که شما به چه اجازه اینو دعوت کردین که بیاین اینجا مسابقه بده و شما نمیتونی بیاین مسابقه شرکت کنین. بله که این اتفاق افتاد و ما رو برگزار که اتفاقا همون تیمی که برای مسابقه انتخاب شد و الزام شدن در عین سر هواپیماشون سقوط کرد و خیلی از دوستایی من داخل اون هواپیما بودن و فوت کردن. خب شما بعد از یعنی این آخرین باری بود که در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کردید بعد از اون بازم مسابقه ای یا انتخابی تیم ملی شد که شما دعوت نشید یا دعوت بشید و خط بخورید بله اتفاق افتاده بازم داخل در سال 90 باز هم من اون در اون سال برای مسابقات قهرمانی کشور جوانان شرکت کردم و تو مسابقه دومشم دعوتم تیم ملی که تو انتخابی تیم ملی هم من دوم شدم و تو اردو بودم بعد یک مرحله اردو که تموم شد برایش رو برای بری محل دوم دو دعوت کنن منو دیگه منو دعوت نکردم و هیچ کبری ازشون نشد منو خد زرن از اردو همینجوری که در هم هم از دانشگاه خواه شما خب دان... اخراج دانشگاه به چه صورت بود؟ اون هم همینجور شفاهی بود یا با مدرکی چیزی بود؟ یعنی به شما مدرک دن یا نه؟ یا فقط شفاهن از شما خواستن که دیگه ش... نیان به دانشگاه؟ اون هم به اصطلاح شفایی بود دیگه ما رو خواستم داخل دانشگاه گفتن که نامیر محرمانه از به اصطلاح بزارت علوم اومده گفتن که ایشون حق تحصیل نداره خودم دانشگاه بودین؟ دانشگاه غیرانتقای آفادانا شیراز که ده ما اقام، ادعایشون گفتن که خب مدارک رو ما نشون بدین و اونا هم زیر و گفتن که نه نامه ای نیومده فقط هم جوشاپه زنگ زدن میگه اینجور ما رو پیچوندن اینا منم مدارکم خیلی لازم داشتم مدارک دانشگاهی مو خیلی لازم داشت که به اصطلاح اینها گفتن که تنها در صورت ما مدارکتونو بهتون میگیم که شما بزنین انصراف از دانشگاه تو ما انصراف داریم از دانشگاه درسته که خلاص تیکش مکهشای زیادی دیگه آخر مجبور شدم اونو قبول کنم چون که مدارکم گیر بود مدارکم لازم داشتم شما اون مدارکی که ما گرو و که به اصطلاح این کارو بکنیم که مدارکی که این مدارک چه مدارکی بوده چون شما دانشگاه رو تموم که نکرده بودی؟ تموم شده بود اون تحصیل شما تو دانشگاه یا نه؟ آره اون مدارکی که مربوط به دیپلم و وضعیت خدمت و به اصطلاح من لازم داشتم برای که مثلا من خواستم معاف بشم از سربازی یا اینکه توی دانشگاه دیگه دانشگاهی مجاز شرکت کنم و این نیاز داشتن این مدارک مدارکه خب در واقع به یه،, به یه صورتی مدارک شما رو به گرو ورداشته بودن که شما با رضایت خ... اعلام بکنید که من با رضایت خودم دارم از این دانشگاه میرم و آره. بعد مدارک رو آره دعیرم خب وقتی ب... این اتفاق ها رو برای دانشگاه پیش اومد چی؟ شما همینجا ختم شد یا این که وزارت علوم یا جای اعتراض کردید؟ باید ما اعتراضمونو اعلام کردیم که اونها هم جواب درست ما ندارن نمون جواب که همیشه به همین میدنی که یعنی جواب درست کاملی ما ندادن. از لحاظ ورزشی چی یا هنوز هم فعال هستید در رشته جدو یا نه؟ بله من سال ۹۲ هم باز در مسابقات کشفری بزرگ سالان شرکت کردم تو بعض این ۶۶ کیلو سه شدم تو این مساعدگاه و دعوتشم اردو تیم ملی که اون موقع سم عبی اردو تیم ملی آقای آقومیزاده بود و به سلا مدیر تیم های ملی هم آقای آرش میاسمایلو که درمان جان بودن که سه چهار روز از اردو گذشته بود آقای آرش میاسمایلو من کشید بیر کنار گفت که اصلا نگران نباش که حالا چون که باهای بودی دفعه های اتفاق اتفاقا برای افتاده این سری هم باز میافت من کاملا پرش هستم و من فقط برام جدا مهمه و این مهمه اینکه بازیشکار بازیشکار باشه و این مسائل برام مهمه که اتفاقا عذر من تو اردو تا عذر همون روزم هم نکشه یعنی همون روز بعد از ظهر به من اعلام کردم شما بعد از اردو برید آیا شما هر بار که این اتفاق میفته من حد میذارم شما اعتراض میکردید به فدراسیون شده همیشه هم جواب اونها یه جواب شفایی بوده و دلیل هم میوردن که چون شما فقط باقایی هستین چون به نظر همید که شما از نظر تکنیکی چیزی کم نداشتید بله بله خب مثلا این سری دلیل رو که مثلا ما خواهگاه اون تخت به اندازه کافی نداشتیم حالا شما رو فرست دادیم سریعی دعوتتون اولتون میکنی بازم خبری نشید خیلی جالبه که کمبود تخت خوابگاه رو دلیل خط زدن شما ذکر کرده در صورت اگر که شما الان یکی از اون مسئولین صدراسیون جدو فرض کنید دارن این صدا شما رو بشنبن یا در این مورد اطلاع پیدا بکنن دوست دارین چه حرفی بهشون بزنید؟ به عنوان یه جوان ورزشکاری که خب افتخار هم کسب کرد و اگر میرفتید تیم ملی ممکن بوده برای کشور ایران هم شما افتخار بیافرین و از این امر محروم شدید چه صحبتی با اونا دارید و دوست دارید چی بهشود بگید چیزی که میتونم بگم اینه که من فقط برای آزادی بیان و حق خودم شرکت کردم توی مسابقات و تمام تلاش من این بوده که ثابت کنم که من راست من در اصل دارم و اینکه دوست دارم حداقل در آینده ح از من ممکن بگذر و این اتفاق برای من نیفته. ولی ازشون توقع دارم در آینده اگر برای کسایی مثل من که مثلا بر زندگیگیر به های دیگه که یا عملیت بیننی که میخوان پیشرفت کنند رو این جوور جلاش رو نگیرن. چون این ضربه بزرگ روحی به اونم میخوره من تو بچگی هم خیلی باذیر مشکل داشتم و خیلی هم افسردگی پیدا کردم برای قضیه از همون زبان نو ولی و خب عداقل توقعام اینه که برای اصلای آینده این شرای بشه بهد باید اونها بتونم به هر بهشون برسن و جلوی اونها رو نگیرن در امیدوارم که از این مصاحبه خوشتون اومده باشه با دوستاتون حتما به اشتراک بذارید و تا هفته آینده خدایی ها رو نگهدارتون